كتب باشترين هاوري خويد نوي كتبو قران بنو حكمتاكاني نوسيندا كتبي چشدين مجاور نوسيني هجار مقلعاني خويد نوي علي مارکردنی دلیر سلیم گرانی عزیز سلطانلی به خوش حالین لا بشی هفتاو پنجی خند نویکتیبی چشت میجوری حجری مکریا نهایت ولاتن یوادرین که هجاری مکریانی، یرانوی بسرحات جیانی خویده، دیت اصر باز کردن لجیان نامی افندی، اولو باره و اگر با گلانی بیا کسی وکو کردیش و گلانی خدا پیداو تاریخ به نوسرا با، ناوی افندی لرزی ازاو کارزاننده با اویزی رو بدرشترین خط دنوسرا، بلام آخ و صد آخ که او جور پیوانه نویان لبیرده چیتاو کس آوریان وسر سر ناده، بلام اونده من لید زنم زیانینی توش بیزانی و جروبار و بیرد بیتو. برایم افندی با درجه ستواندو لرشته پولیز دابو. حاتب و ریزی شو رش. هولی ری با قلافت چاو برو رشی جوان چک. لوطا حاتب و کوری خباتو نوی برایم افندی زراوی افسر و چک داری دولتی عراقی برده بو. دجمنانی کردی نیوشو لما لخوی اندردینو در رفندنو کس هستی پی جاریک دا پاش نویجی شیوانده پولیس همو رگی هولیر شقلاوا هولیر کوئی بستو و همو ماشینان دا پشکنی زور کسان دگری تا بیانین زنراوا که او پولیسانا پیشمرگی برایم افندیبونو جلوزمانین گوریوا سرهنگی که عربی استیره لسرشن دگل دوستوان لچی پیکی دولتی دا دو کامیونی زیلی سربازی بدواوا سربازو پولیسو جاش عربی اگل بسر تیدا ترجمانی که لهر دیک خلق کو دکنوا آگداری آگداری فرمانی شردگل بارزانی در شوا کی آماده بیت سرهنگ دلیو کبرای کرد ترجمه دکت یکیگ یک دلی قربان من آمادم اوشت فنگم پی برو لاچو تو بکر نای یما پیاوی سابقه در من دوی خو پولی دولت بخور رای نیا هویش دلی قربان گن می پیشمرگم سوتاندوا لفلان جشبم کردوا کردو. هیا پی دلین بیستو هشت 28 جاش کودکنو برو هاوی نهواری صلاح دین باش شوست دادین هرکسیش صوار بوا پولیست فنگیلی ورگرتوه و حلی پسردوه کلمیدانی شرده دا وریده گرنوه لا صلاح دینوه لا ادن برو هیران دپرسن قربان دا چی نصر بن کی کام پیش مرگا اویش داله قربانو سندن جاشی سک بابدتان بما تیاله من برای مفندیم او دمکه دگل میران لهیران بوم آغا جاشکان لطویلا و داویان لمن کرده بود تکیان بوب کم لطویلا درکون بریار در هر یکی شازده البگنم بدنو لجیم مدرسه یک دا حبس بکرین دوری وانیت یک لجورو دا بتالیس خوال حالچن راوا پیش مرگه سنگری تیدا گرتوا پاش او پاش بوستر سنگری که پر لجاش چواو تقیلی کردون و جاشی گرتون. وانیت سربازان هینابویان هولیر من دالا ورکا باش شوین یاو هرین دا کرد. حکومه تان کی ابراهيم افندی گرتو پتر لچوار سال نی وای بیسیم رمزی دولت داد ل دست ابراهيم بو تا وای بسره هاتبو شوانتوشی افسری خوش انونه د انود هاتو حل ده هتن کرد که پیوی کی ازاو بجر گو فیلزانی وتی بخوا من نیم کردی هولیر نو کارا کن شوانه همو مالک در کی کرا و تو هر گوشتکه عاشورا خسابی هولیر خبریان بو و دگل یان بار کردم، ایواران بسواری دو چرخه بو عرقوار نوا، خلکی هولر دینه دشت و خبری نو شارم ددنی، بداخو او پالوانه تاقانه با دستی پشدریان کجرا، کچوبو نو بجی شار یان بکا، بسطان حکایتی سرسورنر لعزایتی برایم افندی لحولیرو، ملبندکانی تری عراقه لبر کراو من امانم بو نمونه باس کرد. حاج محمد که لقال جاش گیت محمد مولد مم لبرده ولقال مبون تا و کات دای مزرعندو قصیده کرد و دیوت بدآ زور بدآ خواه ما لکان من بونا ملعونی تاریخی می‌لثی کرد بر زانیج بوبا مقدس نازن بابم چون بو بلعم خوا شاهد ما منو وندا بو جاشتی ن راحتم که ما شی خونده کم بیازم لهود بتوه صوفی و برزانیش زوړلمیش سال دښمنی خوين یې کترنو ته اتو شي کتربن هاګر یې کتر لا کوجن لا کافر دمن ناتوان نه بخښش منع کن که د قلب برزانیان بین بل امر یې ګمن بدن د شینو ولاتي خومن یا ایدي شور شیش به مال دکين پیوکی برزانیش لنومن به بوګدری لا من دګل دولت بشر ناين بلم ناش چني یریدی توم پیامن بوګنه برزانیو جا بکم بو بنيرو منیش وتم حاجي محمد اما يقول لك في المحاولات بارزاني يتحدث عن الناس وانا يتحدث عن دوست حكومت بس نوع من المل بند ببن دوارين لنوان ولاتي سوران و بعدينان دو و لك بربدن اگر دوست دولت بی ناچار ديت سردان توپ و تنكو زرية پوش دینن. پشت هل قرد ما ليا اگر اگر او لديانات شناف سر بكو برون وقت پردان بروخیانن بارزانی رازی دبی که شرشی بو نکن و لمال خودان دانیشن بلام اگر لسر اوم بستی خود سور و او منی ناویو لیستاو بفرمو بمگرن اویش دیوت بخوا مت معنی نای که اودم برزانی قرمان نکن بلام تو سای خود که بل کجا بی باشم بو بنیره نشوتم باشه تو هرچی گوتوتا با به دالیم و شرط زیادو کمی نکم و بیرو بروی خوشم د سبی بو پشنیارو ماشین یکم لدوهاتو چومعو گرک حاجی و صوفیکانی لیده جیان دست یک چواغو رانکی در لنگفش جاشانی زور عالی که رنگی سپی بو اندگل پشتینده دو جامانی سری بستر او که وک امامی آخون دی شیعا بشش مانگ بلاو نبیو اگر بلاو بو دبی وستاکر بود ببستیتوا کرای برم ورقی که به امزای فرمانده فرقی کرکوکو دامه، موري مولی پیون رابو. لسری نسرابو عبدالرحمن آغا لفرسانه برزاکانی دولتا تفنگی که یازده تیری تازان با دو رخط فیشکوه لیبر کردم قط جاشی وک خوم شیکم ندیوا سواری ماشینی که سواری بومو کسی اک بیا چک که تفنگو فیشک دانکانم هی او بون دگل سیا صوفی هرکی ریش پانی چقدر دگل ما سوار بون راننده کی کردیش لیده خوری راننده د بیبچه تا بنزین خانه بانزین منیش لپیشه و سوارم، ای خدا، ای آیت الکرسی، کسی ناسیو نم بینیه کبو متجاش، بلام نخیر توش بوم، برادری که پیشمرگه بناوی یونس اقرابی که زور پیکو هاوال بوین، جامانه که رشی جاشانی لسر و لسر کرسیگ داریش توا سی بنزین ورگراندکا، امن چو زانم، اویشوکو من بفیال کاتو تا اویو هشتا پیشمرگه یه، بیرم کردوا لیره چون نجاتم دبی، با خدا بیو نبی یونس بو تجاشی دولت. استا خبرم لیه ده. منش و حاجی محمد یشتوش ده بی. دلم لسر سطو بیستی لیه ده. یونس چایوی بمن کود. استاو روی کرده پشتی بانزین خانو لبرچاو من بو. نخیر یرامو تازه رزگرم نبی. وره کودین هر آور دادمو لکم نختدم گرن نازانم. گینا نزیک شقلاوا با عمر موت لامدن. وتیان حاجی پیوتوین. لخوار شقلاوه سرباز رایان گرتین ماشینن پشکنی هیند یک شکرین دوزیه و که 200 گرام دبو ګروهبان یک پرسی او چیه عمر وتی خود د زانیې ما فرسانی دولتین بازانی شکری نه و چای پی بخواتو او وندې بو د بین خیر منده گاته ګروهبان وتی آی غلطم پی دکې عمر وتی برا تو با قولی بازانی نو تو زه شکر به 45 جاشروه نه بیني ایدی و تیبرون، نرگس و فیاکانی پشت و با خوان قصیان کرد. یکنده گود، کا کا، همیشه سریکم کشت. خزای کی باج بو؟ پس نوجوی شوونه کیدرن، زور من نمادو بود شری لدشت عمر وقتی بودستن، به منی ود دبازه. برانداو صوفی کنی ود، یا بس ندیانا تاملیدم. ماین عمر و عمرمون، و دوای کوتم که با شووردیک دا لریگلادا. تا یک دور کوتی نود داشت و چهرو تاریکول در ری بدور. یستم موتم، عمر نیاز مواجه بکشم. تفنگم هنوز سرپیو رام داشته. عمر زورتر سه. دمی تک حالا بلرژوکیو کزیو تی. خوده تمن ناكوشي و تم بو ناتكوشم داشتی لوا چوالتر نابی داتكوشم و تفنگه کت دوامو با پیشمرگه دلم، صوفي کی شیغ راشیدم کشتوا خلات مکن هلی و با کی حال دکوه دي سان دیو توا خوده تمن ناكوشي دم پرسی آخر بو چی ناتكوشم دیوت چون کتو لوا پیوتری که من بغدر بکوشي و تم یعنی هر لاتوائع ناتكوشم و تی بله دلم برو ناكا و اگر دلت باورناکه او بارا قرد بو من حل گرتوا ها ها بگره تفنگی خواد بو خواد حل گره شانم ها تخوار نزانی که تفنگی کم دایود چند وقتی خواد هر دیگود پیستو اشپو بلا ام دلم باوری نده کرد بم کجی گیشتی نگونده کی چوار پینجمالی بنایوی سلیمان هوا چوی نمالک عمر سرتای دگل صاحب مال کرد دایان کردین و زوریان قدر گرتین امر سیدا په په ځان بلېم حفته که شو قماش کې بودنیرم په میرو بلې آګای لشکارت کمبه په فلان بلې کارم بو پکې نه و ونجوتم امر او توک خرجال بدو سری دروي جا شي صوفي شي دوستی پیش ملګش اوش دی دی باوابي عمر رویشت شو درنګ کبره چې کورته به علي بور لوکینان راګلخستم کبن با ته ګوندی ګوان مان کلاتبو مانګه شوی چې زور خوش کبره لسر چنگان وتم او بواده کی و توی وست لس جاشان زور نزیکن دم عن بینن دم عن کوچن وتم هتیو من دو آمدن تو دریجم سپی مک کلک دا من دبینن هست لسر دو پیبر رو دنا قدل کم دیو ناشارم پیبکن مجاش پیاده زانن راستم کرده و بالام برویشتن و دلرزی گندم یا گندیگوان تسليم حج حسين نوشی کردم وگرای و حسین و توی امشو لی ربا لبر توپان نیورم دگلاد بیم سبایشو دگای نپیش مرگا وتم تم که شویش تو پر و اب زنم هر است خوتم لی خلاص کی باشتره یان ریگم نیشان ده بتا نیداروم ناچار و با بابروین نزیکی ساعتونیویگ پیهلگران لبناری زوزگ پیشمرگه دن جانده این چین و تمن که که دوستین بیجان جندی و کاک که که جار خودی من دنگی تناس کرد تو چون هاتی گیم بیجان و کابره گر را و لبن داریگ دگل کرد. یک کله وسر من، نه تفنگی کن تفنگیکن بیر او پادگان رواندوس دا به هزاران دا فیشکو او گوله توپیان لجواب او تاقه فیشک ده ده تقاندو شوم لویر رابوار سعید حمد الیاغامن ده دقلبو کپی ماندوت سعیدا چویر حتی توپ ل رواندوس ده وجرا زو پتوید د خوید پهچا د مانوت بو پیتوای پتو زری د جی گوله توپه نخله شی یراو که لدشتی شنو دقل ایران شرمن بو روحششوم الدم چوم, چوم جلبشوم تیارهاد کنار ریبه کم لکن دال بدی کردو خم خزان ناوی پیل قای کن لسرم دا شخص لیمان بوتی پاکولی رشم دنگارن بو بیانی چوی نبند کی بیادن پیش مرگی کی زور زن نرده بو که با خبر بداو جاییک بی بمبا تیواره عصر خبر نه تو وتم خم بپید روم تعتوشی کبرای راس پرده دم.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 له ویسته ای وره ماموا سواریکه ته بوله دوم بردمیه غلاله عبد الله غای پجدری پیرا دغیشت میوانی و تاغکی او بوم چاقو هر یک بو ددووت حمامی جنانه یک درویش تو دو دهات خوی چیو جهندمی چی سعاد دوی پاش نیوښو او لاغه اوتی د شمه فلانجه ثابت وانی پخوی ام هر دهاتن دانود او لاغه چلیهات نخیر پتوی کم حال گرتو لده درچوم با دو یک در رویشتم توشی حسن برای اولاغابوم لسر تا تکانی اک دو لیباتی و نستو به به ایتر حسامو گرمایی تاو خبری کرده موا چوار شوان بونان خواردن لای اولاغاو بونستن منو لیبادو پتوی سرکانیو کانی و حسن دیوید خبر من داوا با برزانی بچو لگون دی بن دایزا بی اسب حاضره؟ سالح بامرنی یکی توپنی زورقلو کلا دزگای بیاسیم دا کاری دکردو دمناسیو جوانی که بیستو دو بیستو سی سال بو بخیالیش چند سال بو عشقی مریم سابلاغی بو کلا راڈیو ماملی پی حل گوت بو هاتلم گوتي مام هجر کاری کی زود دجوارم که زور دجوارم کوتوتا تو چارم لیه بکا ما اینه کم مندالا بقسم ناکا منیش دگل تو دیم تو پی بله برو شرم لتو دکا من شوتم آی بسرچاو راجیدو هم بو کله بوم تیره بمبای کی هویشت لمیرگیدا شفیع احمد اغای نزیک 3 متر فردا بو دقر چقاده بو بلامچیل نهت دغال صالحو و ماینکه چوینه شوچون دایزه شاو چون برزنی به بینم زور تری بو دغال پیویک سرمن سری یک تر کوتا یونس اقرایو بو جاور پیپ کنه وتم یونس کتوم ل بنzin خانه هولیار دید لترسان روحم وتی نم، و تی <تصرف> عقد ل منیه کتوم دجال صوفی عندی دگوت میاسته بگرت نم دا لطفاً جی باتال دوکس ترسابون برزنی ل جوابی حاجی محمد هر وقت خون به حاجی مطبوع وجود که تا خوی دجال دلارت نکته دشمن هیس نکره بلعنفر میکاری چاکی هر آبوا کتوم رزگر کردو، جوابی حاجی به حمدآقای مرگسورد بری او شوال نوق ساندا باسی جا شکر کلا با کی خو خراتره اوکات او نقطه م بیر کو توک گوا حمر ز ابرز اشای با وتبو تو هر شای من شای کوریشام دبل تو سخی تر بم ما ویک لو ناوا ما ماو شرک ل گونج شیخ وتمان میوانی بلا تهابم کپیاب کی زور خس خوش بو بیانی ک درویش موتی بلا ملایک میوانی ملایک بو بیانی کر ریش دای بولاند تفیل اردنی خو دکر آخره اگر اوم ملاعد نداناسی خو خود داناسی چون بیه میوانی ملا توش ببوره اگر خدمتت نکرده وا خوشت ملایو منش ملا باج دزانی لکتی بی دا باسی شاعر کی عرب دکه کنایی ابن الحماما کری کوتر بوا لگوندی کلای حلب لعادات مالک خوان مال دلی میوان رانگرم اودلی تو زگ آی سردم ده میوان او عوکیشی بابت نیم ابن حمام دلی لیمک را لبنسیاب ری دیوار کت به حسیم او. کابر دلی دیوار دیوار بون ناسان برز نکرده ابن حمام دلی دیار تو من نانسی من ابن حمامش شاعری بنو بانگم. کابر دلی بر روی خم برده و کری قلارج با. ولی مستافل لاکوستانی کی کندو. لشادری مامته نوک نوری احمد تاهوی دقلسرهنگ مدرسه سواکی کنایو خوی نبو علی برای داده چن. گویی د ناسم ته هژاري غوتم دغه ساواکي کې کی زيره کې ملاباقي نخوشي سرطان بو نرد بو يانه ساواک دوريان ده خست بو خسته بو يانه بر پرسي را نيو ملى مصطفي 24 ساعت د به نه و ملاباقي وتي له تو يانه پرسم غوتم اول ليو ژيو روزنامې من بودنو سي منې شوتم جابو را ستو وتي کاکا زورم درو له بو وتم بار راستي کې شي گگرانی عزیزو، ها دنیا دونیا اکتب، لیغی دابم شیویا، حتی نکوتایی بشی و پینجی خوند نو اکتب چشتی مجیوری هجاری مکریانی تا بشی کتر همولاکتن بن.